مثنوییه، معنویه، مولوی برنامه 24م رجب حکایت زید زید را اکنون نیابی کو گریخت جست از صف نال و ریخت تو که باشی زید هم خود را نیافت همچو اختر که بر و خورشید تافت نه از او نقشی بیابی نه نشان نه که یابی نه راه کهکشان شد حواس و نطق با پایان ما محو نور دانش سلطان ما. حس ها و عقل در درون موج در موج لدینا محزرون. چون شب آمد باز وقت بار شد. انجم پنهان شده برکار شد. بیهوشان را وادهت حق حوش ها. حلقه حلقه، حلقه ها در گوشها، ها. پای کوبان دست افشان در سنا. نازنازان ربنا احییتنا. آن جلود و آن ازام ریخته. فارسان گشته، غبار گیخته. حمله آرند از ادم، سوی وجود. در قیامت هم شکور و هم کنود سر چمی پیچی کنی نادیده در ادم زول نسر پیچیده ای در پیچی ادم افشرده بودی پای خیش که مرا که برکند از جای خیش می نبینی سن ربانیت را که کشیدو موی پیشانیت را تا کشیدت اندرین انواع حال که نبودت در گمان و در خیال آن ادم او را هماره بنده است کار کن دیوا سلیمان زنده است دیو می سازد جفان کل جواب زهره تا دفع گوید یا جواب. خیش را بین چون همه لرزی زبیم. مر ادم را نیز لرزان دان مقیم. ور تو دستن در مناسب میزنی. همز ترس استان که جان می کنی. هرچه جز عشق خدای احسن است گر شکر خاری استان جان کندن است چیست جان کندن سوی مرگ آمدن دست در آب حیات نازدن خلق را دو دیده در خاک و ممات صد گمان دارند در آب حیات جت کن تا صد گمان گردد نود شب برو ور تو به خسبی شب رود در شب تاریک جوی آن روز را پیش کن آن اقل ظلمت را در شب بدرنگ بسنیکی بود آب حیوان جفت تاریکی بود سرز خفتن کی توان برداشتن با چنین صد تخم غفلت کاشتن خواب مرده لقمه مرده یار شد. خاجه خفت و دزد شب برکار شد. تو نمیدانی که خسمانت کیاند ناریان خسم وجود خاکیند. نار خسم آب و فرزندان اوست. همچنان که آب خسم جان اوست. آب آتش را کشد. زیرا که او، خسم فرزندان آب است و عدو. بعد از آن این نار نار شهوت است. کندرو اصل گناه و زلت است. نار بیرونی به آب بفسرد. نار شهوت تا به دوزخ می برد. نار شهوت می نیار آمد به آب. زان که دارد، دو دوزخ در عذاب نار شهوت را چه چاره نور دین نورکم کم نار الکافرین چه کشد این نار را نور خدا نور ابراهیم را ساز اوستا تازه نار نفس چون نمرود تو وارهت این جسم همچون او تو، شهوت ناری براندن کم نشد، او بماندن کم شود، بی هیچ بد. تا که هیزم می نهی بر آتش، کهی بمیرد آتش از هیزم کشی، چون که هیزم بازگیری نار مارد، زان که تقوا آب سوی نار بارد. که گردد سه آتش روی خوب کونهد گلگونه از تقبل قلوب آتش افتادن در شهر با ایام عمر آتش افتاد در عهد عمر همچو چوب خشک می خورد او حجر در فتاد اندر بناب و خانه ها. تا زدن در پر مرغ و لانه ها نیم شهر از شهله ها آتش گرفت آب می ترسید از آن و می شگفت مشک های آب و سرکه می زدند بر سر آتش کسان هوشمند آتش از استیزه افزون می شدی، می رسید او را مدد از بی خلق آمد جانب عمر شتاب، کاتش ما می نمیرد هیچ از آب. گفت آن آتش ز آیات خداست، شعله از آتش بخل شماست. آب بگذارید و نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر آل منید. خلق گفتندش که در بکشوده ایم ما سخی وحل اهل فتووت بوده ایم گفت نان در رسم و عادت داده اید دست از بهر خدا نکشاده اید بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز نز برای ترس و تقوا و نیاز مال تخمست و به هر شوره منی، تیغ را در دست هر رهزن مده اهل دین را بازدان از اهل کین، همنشین حق به جو با او نشین، هر کس بر قوم خود ایثار کرد، کاغپ پندارد که او خودکار کرد، خدو انداختن خسم در روی امیرالمؤمنین علی کرم الله وجههو و انداختن امیر المؤمنین علی شمشیر از دست از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان از دغل در غذا بر پهلوانی دست یافت زود شمشیری برآورد و شتافت. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدو زد بر رخی که روی ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیر آن علی کرد او اندر غذایش، کاهلی گشت حیران آن مبارز زین و از نمودن اف و رحمت محل گفت بر من تیغ تیز افراشتی از چه افگندی مرا بگذاشتی آن چه دیدی بهتر از پیکار من تا شدی تو سست در اشکار من آن چی دیدی که چنین خشمت نشست تا چونان برقی نمود و باز جست آن چی دیدی که مرازان عکس دید در دل و جان شعله آمد پدید آن چه دیدی برتر از کون و مکان که به جان بود و بخشیدیم جان در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسییی به تی آمد از وی خان و نان بی شبی ابرها گندم دهد کان را بجد پخته و شیرین کند مردم شد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد. از برای پختخاران کرم رحمتش افراشت در عالم علم. تا چهل سالان وظیفه و عطا کم نشد یک روز زن اهل رجا تا همیشان از خصیصی خواستند گندناوا، و تره و خاص خواستند. امت احمد که هستند از کرام تا قیامت هست باقی آن تعام چون عبی تو اندربی فاش شد یعتم و یسقا کنایت زاش شد. هیچ به تعویل این را درپذیر. تا آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است و داد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جوز و پوست خیش را تعویل کن نخبار را مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیدهای شمۀیی واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد بازگو دانم که این اسرار هست زن که به شمشیر کشتن کار اوست سانه به آلت و به جاره واهب این هدیه های رابه صد ها. هزاران می چشانت هوش را که خبر نبود دو چشم و گوش را بازگو ای باز ارش خوش شکار. تا چه دیدی این زمان از کردگار چشم تو ادراک غیب آموخته چشمهای حاضران بردوخته یکی ماهی همی بیند ایان و آن یکی تاریک می بیند جهان و آن یکی سه ماه می بیند به هم این سه کس بنشسته یک موضع نعم، چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز در تو آویزان و از من درگریز سهر عین استین، عجب لطف خفیست بر تو نقش گرگ و بر من یوسف است حالمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتضا ای پس سوال القضا حسن القضا یا تو واگو آنچه عقلت یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان فشانی نور چون مه بی زبان لیک اگر در گفت آیت قرس ما شبروان را زودتر آرد براه. از غلط ایمن شوند و از زهول بانگ مه غالب شود بر بانگ غول ماه بی گفتن چو باشد رهن چون بگوید شد زیا اندر زیا چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعاعی آفتاب حلم را باز باشی باب بر جویای باب تا رسد از تو قشور اندر لباب باز باشی باب رحمت تا ابد بارگاه ما لهو کف ون احد هر هوا و ذره خود منظر است ناگشوده کی گوید کانجا در است تا به نکشاید دری را دیدبان در درون هرگز نجنبت این گمان چون گشاده شد دری حیران شود مرغ امید و تمع پران شود. غافل ناگه به ویران گنج یافت. سوی هر ویران از آن پس می شتافت. تاز درویشی نیابی تو گوهر کی گوهر جویی ز درویشی دگر سالها گرزن دوید بر پای خیش نگذرد زشکاف بینی های خیش تا ببینی نایدت از غیب بو غیر بینی هیچ میبینی بگو سوال کردن آن کافر از امیرالمومنین علی که برچون من مزفر شدی، شمشیر را از دست چون انداختی. پس بگفت آن نو مسلمان ولی، اثر سر و لذت با علی، که بفرما، یا امیر تا بجنبت جان وطن در چون جنین هفت اختر هر جنین را مدت کنند ای جان به نوبت خدمت چون که وقت آید که جان گیرد جنین آفتابش آن زمان گردد معین این جنین در جنبش آید زافتاب کافتابش جن همه بخشد شتاب از دگر انجم جز نقش نیافت این جنین تا آفتابش برنتافت از کدامین ره تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو از ره پنهان که دور از حس ماست آفتاب چرخ را بس را هاست. آن رهی که زر بیابد کوت از او با که سنگ شد یا قوت از او آن رهی که سرخ سازد لعل را وانده ای که برق بخشد نعل را. آن ای که پخته سازد می ورا. وانده که دل دهد کالی ورا. بازگو ای باز پر رفروخته با شه و با ساعدش آموخته بازگو ای باز انقاگیر شاه ای سپاه اشکن خود نی با سپاه امت بحدی یکی و صد هزار بازگو ای بنده بازت را شکار در محل قهر این رحمت زچیست چیست؟ اجدها را دست دادن راه کیست جواب گفتن امیرالمؤمنین که سبب افگندن شمشیر از دست چه بوده است در آن حالت گفت من تیغ عصبه حق میزنم، بنده حقم نه مامور تنم شعر حقم نیستم شیر هوا فعل من بر دین من باشد گوا مارمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده افتاب. رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم منگاشتم. سایم من کت خدایم افتاب، حاجبم من نیستم او را هجاب. من چو تیغم پر گوهرهای وسال زنده گردانم نکشته در قتال خون نپوشد گوهر تیغ مرا باد از جا کی برد میغ مرا کهنیم کوهم ز حلم و صبر و داد کوه را کی در رو باید تند باد آنکه از بادی رود از جا است. زن که باد ناموافق خود بسی است. باد خشم و باد شهوت باد آز و را که نبود اهل نماز. کو همو هستی من بنیاد اوست. شوم چون کاه بادم یاد اوست. جز بباد او نجنبت میل من. نیست جز عشق احد سر سرخیل من خشم بر شاهان شه و مارا غلام خشم را هم بستم زیر لگام تیغ حلمم گردن خشمم زده است خشم حق بر من چو رحمت آمده است غرق نورم گرچه سقفم شد خراب روزه گشتم گرچه هستم بو تراب چون درآمد علتی در آمد علت اندر غذا تیغ را دیدم نهان کردن سزا تا احب لله آید نام من تا که ابغز لله کام من تا که اعطی لله جود من تا که امسک لله بود من بخل من لله عطا الله و بس جمله الله هم نیم من آن کس وان چه لله میکنم تقلید نیست نیست تخییل و گمان جز دید نیست زجتهاد و از تحری رستم آستین بر دامن حق بستم گر همه پرم همی بینم متار ور همه گردم همه بینم مدار ور کشم باره بدانم تا کجا ما همو خورشید پیشم پیشوا بیش از این با خلق گفتن روی نیست بر را در اندر جوی نیست پست می به اندازه اقول عایب نبود این بود کار رسول. از غرز حرم گواهی هر شنو که گواهی بندگان نرزد دو جو. در شریعت مر گواهی بنده را نیست قدر وقت دعوا و قضا. گر هزاران بنده باشندد گواه بر نسنجت شرع ایشان را بکاه. بنده شهوت بتر نزدیک حق از غلام و بندگان مسترق کین به یک لفظ شود از خاجه هر وانزیت شیرین و میرد سخت مر بنده شهوت ندارد خود خلاص جز به فضل ایزد و انعام خاص در چه افتاد کن را غور نیست وان گناه اوست جبر و جور نیست. در انداخت و خود را که من در خور قعرش نمیابم رسن. بس کنم گر این سخن نفزون شود خود جگر چه بود که خارا خون شود. این جگرها خون نشد نز سختی است غفلت و مشغولی و بدبختی است. خون شود روزی که خونش سود نیست خون شوان وقتی که خون مردود نیست چون گواهی بندگان مقبول نیست عدل او باشد که بنده غول نیست گشت ارسلناک شاهد در نزار زان که بود از کان او هر ابن هر چون که هرم خشم کی بندت مرا، نیست اینجا جز صفات حق، درا، را کازات کردد فضل حق، زان که رحمت داشت بر خشمش سبق، اندرا اکنون که رستی از خطر، سنگ بودی، کیمیا کردد گهر رستی از کفر و خارستان او، چون گل بش گفته، در بستان هو، تو منی و من تو ام، ای محتشم، تو علی بودی، علی را چون کشم، معصیت کردی به هز هر تاعت، آسمان پیمودی در ساعت، بس خجست معصیت کان کرد مرد، نیز خوار بردمت اوراق ورد، نه گناه امه رو قست رسول می کشیدش تو به درگاه قبول نه به سهر ساهران فرعونشان می کشید و گشت دولت اونشان گر نبودی شان و آن جهود کی کشیدیشان به فرعون انود کی بدیدندی اصاب و معجزات؟ معصیت تاعت شده قوم اسات. ناامیدی را خدا گردن زده است چون گنه مانند تاعت آمده است چون مبدل می کند او سیعات تاعتیش می کند رغم وشاد زین شود مرجوم شیطان رجیم و از حسد او بترقت گردد دونیم او بکوشد تا گناهی پرورد زان گناه ما را به چاهی آورد. چون ببیند کان گناه شد طاعتی گردد را نام مبارک ساعتی اندر را من درگشادم مر زدی و تحف دادم مر مرجفاگر را چون این ها میدهم پیش پای چپ چسان سرمینه هم، پس وفاگر را چه بخشم، تو بدان گنجها و ملکهای جا